این داستانک قول و خیات خیاتی لافزن که خیات چندان خوب هم نبود به سرش زد بره و دنیا رو بگرده. وقتی شرایط فراهم شد، محل کارش رو ترک کرد و راه سفر رو در پیش گرفت. خیات ها دره ها و دشت ها رو زیر پا گذاشت تا به یک کوه رسید. در پشت اون کوه برجی بلند قرار داشت که از بین انبوه جنگل وحشی سربرف بود. خیاط با دیدن برج گفت خدای من این دیگه چیه؟ چون حس کنجکاویش تحریک شده بود با سرعت به طرف برج رفت. اما وقت نزدیکتر شد دید برج پا داره. برج به طرف دامنه کوه پرید. و در یک آن قولی عظیم وجسه جلوی خیات سبز شد. قول با صدایی که مثل رعت تنین میداخت پرسید: تو که پاهایی مثل مدستاری اینجا چیکار می‌کنی؟ خیات آهسته نجوا کرد: توی این جنگل به دنبال یه لقمه نونم. قول با صلابت گفت: خوب حالا حالاها باید در خدمت من باشی. خیاط از ترس متواضعانه گفت اگه اجباری در کار حرفی ندارم اما تکلیف دستمزد من چی میشه قول با لحنی تحقیرآمیز گفت گوشگان دستمزد تو 365 روز کار در ساله در سال کبیسه هم یه روز اضافه است فهمیدی خیاط جواب داد بله قربان متوجه شدم بعد با خودش فکر کرد مثل اینکه که هوا پسه باید یه چاره بیندیشم و خودم رو از شر این قول خلاص کنم قول فریاد زد آدمک برو برام یه لیبان آب بیار خیات گفت بله قربان اگه لازم میدونین تمام آب و چشمه رو براتون میارم خیات رفت و همون یک لیوان آب رو برای قول ورد. قول که ته دلش ترسو و ضعیف بود از شنیدن حرف خیات وحشت کرد و با خودش گفت چه آدم قوی و پردل و جورتیه باید مواظب به خودم باشم تا کاری دستم نده. وقتی خیات با لیوان آب برگشت قول بهش دستور داد چند دسته هیزم از جنگل به خونه بیاره. خیات گفت بله قربان. اگه لازم میدونی تمام جنگل رو از نهال گرفته تا درختای کوهن خدمتتون میارم. خیاط اینو گفت و به طرف جنگل رفت. دوباره قول به فکر فرو رفت و با خودش گفت: تمام جنگل تمام آب چاه. خیاط بزرگتر از اونه که مثل خدمتکار عادی در خدمتم باشه. وقتی خیاط با دسته های هیزان برگشت قول بهش دستور داد، دو یا سه گراز وحشی برای شامم شکار کن. خیات گذافگو با صدای بلند گفت چرا نمیخواین هزار تا گراز براتون شکار کنم؟ قول از شنیدن اون جواب به قدری وحشت کرد که به نفس نفس افتاد. چی؟ چی نه؟ تا برای امروز کافیه. حالا بهتره بری و بخوابی. قول بیچاره دراز کشید ولی چون از دست خیات کوچیک نگران بود خواب به چشمش نیومد اون تمام شب به فکر فرو رفته بود که باید چیکار کار کنه تا از شر خیات خلاص بشه چون فکر میکرد هر لحظه ممکنه به جانش سوی قصد بکنه صبح روز بعد قول و خیاط به جایی رفتند که درختای بید زیادی داشت قول به خیات گفت دلم میخواد روی یکی از این شاخه ها بشینی و اونو کاملا به طرف پایین خم کنی خیات مقرور پرید و رفت روی یکی از شاخه های درخت نشست اون سعی کرد با حبس کردن نفسش خودشو سنگین و سنگین تر کنه تا شاخه درخت به سمت زمین خم بشه اما دیگه طاقت نیاورد و مجبور شد تمام نفسشو بیرون بده در نتیجه سبک شد و شاخه به سرعت به سمت بالا برگشت. قول خوشحال شد. چون با حرکت شاخه خیات پرتاب شده بود و دیگه دیده نمیشد. آیا اون هنوزم در هوا معلقه یا نه؟ من که جوابی ندارم. اما هم خیات از دست قول خلاص شد. هم قول از دست خیات خلاص شد. کانال تلگرامی افسان داستان های صوتی <متصفيق> نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می مهران دوستی تی نقطه ام ای نشانی وبلاگ ما m n d o s t